بسم الله الرحمن الرحیم دوره فقه نظام‌ساز کلاسو سطرفیعی علوی جلسه 7 دوره مسائل برا برات لا استوبه ارتقاء مذهب حقیق اهل بیت باشه و مقدمتاً و قبل از ورود به بحث اصلی دکتر اشاره بکنم که دوره ها و نشست های علمی که در حوزه‌های های مثل حوزه فقه نظام ساز برگزار میشه دوره های بخش زندگی یک طلب تلقی میشه آستانه زندگی که شما الان درش قرار دارید بهترین روزه ها برای تصمیم سازی آینده شماست یعنی اگر الان و در این آمنه تاریخی شما بتونید تصمیم سازی دقیقی نسبت به محتوی حرکت و مسئولیت حرکت و سازندگی خودتون در مسیر طلبگی انتخاب بکنید این بالاترین هدف این دور است شاید جسته گریخته و به مناسبت همه شما حجمی اطلاعات آموزه نسبت به قوضه فقه نظام ساز و گفتگو هایی که در نظام علمی ما در حوزه علمی اتفاق میفته داشته باشید و البته خب طبیعتا تداول و تکامل و تزاروبی که در این فضا اتفاق میفته قطعا برای شما آموزندگی های خاصی داره اما بالاترین هدف از این دوره اینه که شما بتونید در انسجام بخشی و تقویت تسلیم سازی نهاییتون در مورد انتخاب حوزه های پجوهش، حوزه های تحصیل و حوزه های آموزشتون موفق باشید و طبعا در یک نسیم گذرای نفحات یک دوره ی فقه ساز شما توفیقی جز تعلق به موضوع جلسه برای تأمل بیشتر در مسیر طلبهی ندارید امیدوارم که دوستان من که جناب آی دکتر مشکانی و اساطید معظم، دوره امیدوارم توی این دوره تونسته باشند انگیزه کافی که البته انصافا خلوصی که در شخص جناب آقای و تیم همراهشون همیشه هست در برنامه ها به نظر من زامن خوبیست برای این که از همین الان پیشپیلی بکنیم دوره توفیقاتی در خودش داشته و انشاءالله این توفیقات بیشتر هم بشه الغراز این رو گفتم که اگر از امروز ظهر که این دوره تمام میشه فردا ظهر که این دوره تمام میشه و شما برمیگردید به زمان و مکان خودتون و به روزمره علمی خودتون برمیگردید امیدوارم جای دقیقی در مواقع شما باز کرده باشه که شما بتونید در مسیر طلبهی ان انشاءالله رشد پیدا بکنید و این رو هم بدونید اصاسا هیچ هیچ تصمیم علمی دفعتا و بدون تلاش مستمر نمیشه و باز این رو هم بدونید. هیچ کس سالها پیش ده اواخر دهه هفته زمان من رسیدم خدمت حضرت عیت الله سبحانی یه امانتی برایشون رو بودم و امانت را که تحویل ایشون دادم و این از احوال انسان غیر کامل که فاقد برخی از شعورهای استفانی هست ایشون از من پرسید که شما چیکار کار میکنید من گفتم بله من مثلا تلوه های فلانم هم دارم معدلم من بیسته مثلا اینجوریه اینجوریه ازمو کنم انسان ممکنه به جهت سغره سند دو چهار خلاص فقدان شعور هم باشه منم من هم وقت شعورم نمی رسید که خلاصه نبادین این حرف های یه نگاهی به من کردن گفتن ببین با اون لحجه ترکی فارسی شد گفتن ببین کسی با معدل 20 مجتهد نمی کسی با ارتباط با یک آکادمی علمی حوضه علمی عمیق ضرورتا نمیتونه یک چهره علمی مبرز باشه یک برنامه علمی که تو حوضه علمی یا تو هر مجموعه آموزشی دانشگاه، مدرسه، نمیدونم هر جا اجرا میشه شما مطمئن باشید که اون برنامه نمیتونه شما رو مچتهت کنه اون کسی که میتونه و اون چیزی که میتونه باعث توفیق شما در تحصیل باشه که امروز ضرورتن و تعیونن رسیدن به ملکه اجتهاده قطعا در پناه تلاش استمرار برنامه ریزی دقیقشون است این نکات را مقدمتن گفتم که بدونید اون فصل تاریخی و اون موقعیت استثنایی و اون پیچ تاریخی که امروز من و شما در حوزه علمی شیعه باهاش روبرو هستیم باهاش کوتاه کوچک موزعی برخورد نکنیم اگر طلب هستیم با حواسمون باشه نیامده باشیم طلب شده باشیم که خلاص خواب زهرمون به هم نخوره برای مذهب مظلوم اهل بیت امروز و برای نجات بشریت که خود اهلویت برای نجات بشریت خود اساس دین فصل رحایی بشر از حواقیت بود واقعا باید تلاش شبانه روزی کرد این مقدمه به خاطر این بود که احساس کردم در ورود با یک جامعه نخبه و علاقمند که بهترین فصل زندگیشون رو تجربه میکنند رو رو هستم به لحاظ علمی میدونید انسان وقتی پاش را از 34-5 ساله گذشت سالی چهار هزار سلول بدن انسان در واقعیت در قسمت های بدنش را قسمت های مختلف بدنش را از دست میده و به این فراین میگیم پیری نظر شما هر چقدر پیر بشید کمتر میشنوید کمتر میبینید کمتر میفهمید بهترین روزهایی که شما میشنوید و می‌تونید بشنوید میبینید و میتوانید ببینید و از همه مهمتر میتوانید تلاش بکنید همین روزایی الان شماست امیدوارم برنامه دقیق مفصل و عمیقی داشته باشید برای رشد در این بهترین روزهای های زندگی و الا به زودی آثار خلاصه قبولت در انسان ظهور می‌کنه می بینه که خلاصه بار خودش را نبسته خب مقدمه اول من که تقریباً شاید بی به اصل مدعا اگر بخوایم بگیم در 200 سال گذشته یا 300 سال گذشته در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی مهمترین کشف یا مهمترین ظهور علمی چی بوده که باعث مبدع همه تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و اساساً زندگی در واقعیت اجتماعی انسان بوده بدون تردید با پاسخ بدیم قانون قانون با این قواره با این شناختی که امروز من و شما ازش داریم سطحی از هنجارهای های الزام آور برای کنترل و تنظیم نظام زندگی اجتماعی انسان که با توجه به اهمیتش در تنظیم زندگی انسان از یک هرم بسیار حفاظت شده برخورداره که شما در رأس این حرم در هر نظام سیاسی مهمترین هنجارهای اون نظام رو میبینید تا همینطور این قانون متكسر میشه در ریزترین بدن نظام زندگی ها. رأس این حرم رو فرض بکنید نظریه سیاسی قانون اساسی یک نظام حقوقی تو قله این هرم که برای تأسیس این قانون اساسی خلاصه حزینه های بسیار سنگینی میشه شهدای انقلاب انقلاب اسلامی هشت سال دفاع مقدس و بعد از اون همه اون شهدایی که من و شما خلاصه یه جایی وصل معنوی به این حقیقت جاری و ساری هستیم برای تحقق آرمان این قانون آمده رأس این هرم و زیل این هرم در نسبتی تعریف میشن با این قله یعنی شما صلا فرض بکنیم هرم قانونی کشور در رأس این هرم قانون اساسیه بعد مثلا فرض کنید قوانین مصبب مجلسه این قوانین مصبب مجلس یه نهادی بر اینها نظارت شرعی و نظارت قانونی میکنه اسم اون نهاد چیه؟ شورای نگهبان قانون اساسی هر مصببه ای از مجلس بخواد حالت الزام آور پیدا بکنه بیاد وارد زندگی اجتماعی ما بشه میره از مرزی و از مسیری عبور رو تحت عنوان دادرسی اساسی دادرسی اساسی یعنی چه؟ یعنی که شورای نگهبان میاد نظارت میکنه ببینه آیا این مصوبه قانونی که توسط این مجلس کارشناسان تصویب شده درش تحقق شرایط شرعی و قانون اساسی وجود داره یا نه؟ و اگه این رو نشتبه اصلا قانون نمیشه یعنی اگر نسبت دقیقی با قانون اساسی ما نداشته باشه اصلا قانون نمیشه قانون عادی مجلس یه پله می آید پایین تر از این هرم پایه این هرم قدری گسترده تر میشه تنوع این هرم قدری گسترده تر میشه شما 176 هفت تا اصل در قانون اساسیتون دارید ولی الان در نظام حقوقی ما قوانینی که بعد از انقلاب به تصویب شورای انقلاب یا مجلس شورای میدوند خب یه برهه خیلی کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی بعد انقلاب انقلاب اسمش مجلس شورای ملی بود چون قبل از انقلاب مجلس شورای ملی بود بعد انقلاب یه برهه کوتاهی بعد خود مجلس مصوبه ای داد که شد مجلس شورای اسلام و بعدم تو اصلاحات قانون اساسی هم تحت اموان مجلس شورای اسلامی هموند هزار مسببه قانونی از مجلس به ما رسیده و تقریبا چیزی هولوهوش سیزده چارده هزار مسببه قانونی از مجلس شورای ملی یعنی از قبل از انقلاب هم وجود داره که الان الزاماوره ما بهش عمل میکنم قانون مدنی که بعضا شاید شما طلبه ها به مناسبت خوندن عرص و و شفع و کتاب البی مثلا یه گزرار شاید به قانون هم یه مثلا نگاهی کرده باشید شاید بعد این قانون عادی یه پله تر میشه برای اجرای هر قانونی شما با نیاز به آینامه و دستور عمل و شیوه نامه دارید که این توسط قوه مجریه ایجاد میشه اگر آین نامهی در خلاف قانون اساسی باشه شما میتونید از این آینامه نامه در دیوان ادالت اداری شکایت بکنید این رو ابطال کنید یعنی دیوان ادالت کنترل میکنه که این آین نامه ها و شیوه نامه ها خلاف شعر و قانون اساسی شما نباشه باز بیاد پایین تر مثلا اون آینامه اجرایی، اون قانون رو میدن مثلا به یه وزارت خونه اون وزارت خونه هم باز دوباره شیوه نامه اجرایی و یه قواعدی رو میاره دستورالعمل هایی رو برای اجرا میده اینها هم کنترل میشن هم تو دیوان ادالت اداری کنترل میشن و هم از طریق رئیس مجلس کنترل میشن باز میاد پایین تر مثلا این نامه رو میدن به صنف بقال اجراش کنه به صنف زمینی فروش مثلا اجراش کنه اونم کنترل. یعنی این هرم هرچی میاد پایین تر اسم همش هم قانون مصببهی که مثلا سنف تلافروش مصببهی که مثلا فرض کنید اداره آب اداره آب شهرستان مثلا فلان شهرستان مثلا استان فلان داره اسمش قانون تقریبا با تساهل تا همون قانون اساسی و مهمترین و مرز نظامهای اجتماعی و نظامسازی در یک کشور را و فعالترین نقش را قانون اساسی در این رابطه بازی میکنه و ما اگر بخوایم بگیم تحقق واقعی نظامسازی چهره عینی نظامسازی علمی که شما تو این دوره در مورد نظامسازی و فقهی که متکفل نظامسازی اجتماعی چیه تمام اون چه اقتصاد دانا میگن تمام اونچه دانشمندان رشته های مختلف میگن تجلیش در قانونه و شما بدونید شما این را بدونید در یک نظام اجتماعی تا قانون از بلوغ کافی برخوردار نباشه اساسا هیچ اتفاق جدیدی در یک کشور نمیافته شما به ناکارامدی های موردی که در نظام سیاسی اجتماعی ما وجود داره نگاه کنید حالا شما مستحضرید <تصفح> تو سال‌های اخیر بیش از هزار و انتقاد از طرف مراجع معظم تقلید به وزرای اقتصاد و مسئولین سیاسی اقتصادی کشور در مورد قانون بانکداری اتفاق افتاده هر مسئول سیاسی از وزیر اقتصاد و رئیس بانک گرفته تا رئیس جمهور میادقند اولین نکته ای که مراجع معظم تقریبا تو این سالها تذکر می بحث بانک داریست که این غیر است خب این ربطی اصلا به بانک نداره این ربط به قانون بانک داره یعنی بانک نیست که تخلق میکن بانک میگه من دارم قانون اجرام میکن این قانون که لحاظ شرعی درش کامل است، ستون خیمه فقاهت علمی ما مراجع معظم هستم تشخیص خلاف شر اگر با اینها باشه اینا میگن خلاف شرعه اما نظام قانون گذاری شما طوریست که رسمن از طرف آقایی شما دیدید تذکرات را ربا ترویج میشه شما نگاه بکنید حالا من یه مثالش رو در اوزه بانک داری زدم شما هر چالش هرچی همین الان تو ذهن دون مهمترین چالش اجتماعی ما رو نگاه تو ذهن خودتون از نگاه خودتون در نظر بگیرید قطعا مرز و اصل اون چالش در قانونه یه اگر قانون درست بشه اصلا چالشی وجود نمیان شما به پیشرفت های چهاردههی گذشته ما نگاه بکنید مگر از غیر از طریق قانون زاییده شده پیشرفت که ما داشتیم هر جا قانون درست شده درست بوده حتی همه حوزه فناوری‌ها، ها مثل شانه ها حوزه انرژی هستهی ممکنه بگید خب بعد داری رهبری دست نه آقا این طور نیست قانون انرژی هستی، قوانین مرتبط به حوزه های نوین در کشور ما کارآمد. حوزه نظامی، توانمندی‌های نظامی شما کنید می‌کنید توانمندی‌های نظامی چطور خلق شده؟ قانونی هست. مجموعه مثلا به نام مجموعه هوافضا در سپاه تشکیل میشه، حمایت میشه، بودجه داره، فلان داره، کمک میشه و قانون استانداردی داره که آدم های مخلص در اون فرایند میتونن اون هدف عالی رو محقق بکنن حالا بالعکسش. یعنی میخوام بگم اساسا مرز نظام اجتماعی جدید قانونه هایی رو زدم که قانون با حضور آدم های خوب تونسته توفیقات بسیار زیادی خلا بکنه من همینجا میتونم برای شما مثال بزنم. آدم های پاک، مؤمن، سالم وارد نظام قانونی شدن که دوچار آسیب بوده چنان این قانون غلط، اینها رو بلیده که در آخرش هیچی از اینها نمونده طرف انقلابی آمده زد انقلاب رفته طرف رئیس جمهور امام آمده زد انقلاب رفته چرا؟ چون قانون سلاحیت چون قانون کارش نه به تو اقتدار میده در نظام اجتماعی جدید شما نیاز به یک سری سلاحیت های فردی دارید شما میده در مغازه خرید میکنید این یه سلاحیت، این یه اقتدار فردیه شما میده در مغازه خرید کنید این اختیار را به شما دادن اما آیا در مورد این که مثلا فرض بکنید کجا لوله آبا خابونیم یا لوله برقا بخابونیم کسی به شما سلاحیت داده؟ این سلاحیت کی میده به رئیس اداره برق؟ قانون اداره برق من سعی می کنم مثالها رو خیلی ساده بزنم تا شما بتونید ارتباط برقرار حالا فرض بکنید قانون اداره برق قانون فسادزایی باشه یکی از مشکلات ما تو این سالهای اخیر شما حتما تو زندگی فردی و روزمرتون دارم موضوع شناسی فقهی بحث رو در مورد قانون میگم تا در مورد فقه قانون صحبت بکنم حتما به مسئله شهداری ها فسادی که در شهداری ها هست پول میگیرن رشوه میگیرن یعنی شما فکر می کنید مثلا فرض بکنید به لحاظ اخلاقی یک ایران خب اینا کجا انتخاب شدن؟ یعنی همه شهدارا علیازو بالله دن، همه کارمانده با دز باشن با چی بگیر باشن به با قول آمیانه چه انتفاقی می که این رخ قانون شما ضعیف. قانون شما نمیتونه شما رو توانمند کنه برای این که این سلاحیت گفتیم تعریف قانون رو گفتیم برای تو گفتیم قانون هنجارهای کنترل اجتماعی این نشون میده قانونی که شما به کردی کنترل بکنه اون نظام اجتماعی شما را توانمند نیست و به جای اینکه منجر به تأمین منافع عمومی و خیر همگانی بشه منجر به فساد میشه و فساد موجب کاهش سرمایه اجتماعی قانون میشه بعد از این مدتی هیچ احترام قانون و قانون مداری در کشور نخواهد میگن کارمال تراکتوره چون کار کردن در جامعه ارزشی نداره این مثال های آمیانه است که از خلال شما میتونید بفهمید چه اتفاقی افتاده در ای که رابطه مستقیم بین کار و تلاش خلاقانه و رشد وجود نداشته باشه یعنی شما وقتی تلاش میکنید رشد نکنید رابطه مستقیم نباشه منجر به رشد شما نشه بعد از یه مدتی ملت میگن کار ماله تراکتوره. بعد از یه مدتی در جامعه قانون نتونه توانمند عمل بکنه چی میگن قانون چی بریم مشکلمون یه جوری دیگه حل کنیم الان در کشور ما یکی از مشکلاتی که ما باش روبرده هستیم اینه که کسی که یک مشکل داره در تراوط اجتماعی خودش با نظام های اجتماعی اعتماد به قانون نداره اعتماد به هر چیز دیگه ای داره غیر قانون. خب حاج آقای فلانی تو فلان بانک با ما آشناست، می‌ریم باش صحبت می‌کنیم. یعنی چه؟ یعنی قانون نمی‌تونه کنترل نظام اجتماعی بکنه. نمی‌تونه قانون منو به حقم برسونه. یه آشنای پسر خاله‌مون فلان جا کار می‌کنه، قلدد کارمون رو راه یعنی چه؟ یعنی قانون سرمایه اجتماعی کافی برای کنترل نظام اجتماعی شما نداره قانون مقبولیت نداره اساساً اجرا فصلی از قانونه قانون وقتی خلق میشه یک سری بایدها و نبایدها خلق میکنه اجرای این وظایف رو هم قانون مشخص میکنه قانون میگه چه کاری رو باید انجام بدی چه زمانی چطور و چگونه و چه کسی مسئول این کاره چه کسی میتونه این کار رو انجام بده بخشی از موزمی از قوانین در کشور قوانین اجرایی هستن یعنی برای اجرای یک حدید اجتماعی تو کشور فعال قانون مالیات ها اول مالیات ها رو میکنه بعد میگه کی مالیات بگیره؟ چجور مالیات بگیره؟ این میشه اجرا لذا تمام یک, یک نظام حکومتی سه تا کار انجام میدن اصلا حکومت ها سه تا کار انجام میدن همون چیزی که ما تو فرق هم میخونیم ولایت افتا ولایت قضا ولایت اجرا یا ولایت تصرف که تو اسمش توی نظام حقوقی جدید اقتدار قضایی اقتدار اجرایی و اقتدار تقنیمی قوه مغننه قوه مجریه و قوه قضایی همه این را هنوز اساساً وارد بحث فقهیم نشدم دارم در مورد موضوع مهم می به نام قانون صحبت می کنم تمام اینا برای اینه که شما در مورد و یه نکته را همین همینجا بگم متاسفانه ما ها از حقوق و قانون فقط قضا رو میشنسید ما طلبه ها وقتی به هم میگن حقوق و قانون قضاوت متصور میشیم و این فروکاهیدن یک پدیده اجل اجتماعی به یکی از وظایف کچی کشه اصاسا اینجوری نیست که شما فکر کنید من خودم رئیس مدرسه مسئولیت مدرسه عالی قضاوت را هم در همین شهر قم دارم مدیر مدرسه هستم نوت درصد طلبه همین امسال ورودی هوزه علمی دو نفر بود به سطح عالی که از این دو نفر دو هزار نفرشون در کنکور ورودی مدرسه ما امتحان دادن وقتی من مصاحبهشون می کنم خود وقتی مرحله شفا مرحله کتبی تستی و تشریحی رو امتحان میدن و می کنن میان که مصاحبه بشن من باشون صحبت می کنم مرحله آخری که مصاحبه که مصاحبه علمیه که با خود ما مصاحبه فقهی اصولی است که با خودمون برگزار میکنه بیش از 90 درصد طلبوا حقوق و قانون رو فقط قضا میدونن و جالبه هیچ شناختی هم از نظام و قانونی ندارن بعضا من با بعضیشون که یکی دو سال دیگه وارد نظام حقوقی کشور شدم شدن صحبت کنم باز این اندیشه درشون هست که قانون فقط قضاوت میتونن در صورتی که قانون خیلی مهمتره اید. خیلی مهمتر این مهمی که در مورد صحبت کردیم قانون که من اگر بخوام از زوایای اهمیت قانون برای شما بگم هرچه بگم کم گفتم یه زمانی من تو زندگی مجبور دم یه تصمیمی بگیرم یه تصمیمی از جنس تصمیم های طلبگی که همه شما بالاخره توی فصلی از زندگی طلبگی تون مجبورید بگیرید مثلا پای 6 تمام میشه الان بخواید برده پای 7 بشید تصمیم بگیرید تخصوصی بخونید یا مثلا من یه شرایط مثلا خاصی داشتم اون زمان خدمت یکی از اساطید معظممون که هم شما میشنید و هم بنده میشنسم و خداوند اشالله ایشون رو حفظ بکنه این روزه هم که سالت دارن رسیدم بهشون بختم آقا من الان مخیر بین اینم که این مسیر رو برم یا برم سمت شناخت قانون و کار کردن در مورد. این جمله ایشون را باید با آب طلا نوشت. فرمودن امروز در زندگی مؤمنانه تشیع ارزش یک خط قانون از صد رساله عملیه بیشتره هست یا نیست؟ شما فکر کنید رساله‌های های توضیح المسائلی که در طاقچه خونه خیلی از ما خاک میخوره چونها که عمل میکنن چونها که مثلا عمل نمی کنن یه, یه الان یادم افتاد. یه سفر حجی ما مشرف شده بودیم یه کاروانی رو من برده بودم به عنوان روحانی کاروان من باشون تو عمره مشرف شده بودم یه آقایی توی این کاروان وقت تواف حرم از ما جدا شد با که ما تذکر داده بودیم و اینها جدا شد وقتی به ما پیوست یه مسئله شعری ابتلاه پیدا که این اون تواف دورش رو شکسته بود و من بخواستم به جواب بدم که حالا باید دور چندوم شروع بکنه یا از اول شروع بکنه چیکار بلد خودم آمی بود گفتم که حالا این آم پخش میشه خیلی هم خوب نیست گفتم گفتم آقا مرجع تقریدت کیه گفت یه تعملی کرد و گف یعنی حتی این قدر، یعنی این قدر بدوی. قانون در مسیر زندگی شما. گویت الان تأثیری که یک رساله عملیه در زندگی ما میذاره، یک تأثیر فردی است. من بخوام به اون مساله، مثلاً هزار و بیست و این رساله عمل میکنم در حوزه عقد وکالت. نخوام اول نمی کنم ولی شما بخوای یا نخوای هر وقت بخوای عقد و کالت داره بکنی باید به این قانون عمل کن. حالا اینجوری شاید راحت تر بتونم بگم وقتی میگم صد رسال البته این میتونه نقد بشه این, این نکته من میتونه نقد بشه ولی حالا اجمالا نرزم یک رساله عملی شخصی قطعا ارزشش نیست تا قانون به مراتب پایینتر و امروز بر ما ها در حوزه تقنین ولایت اومنایی که بر اساس ادله روایی الولما علما اومنا این امنا بودن یکیش صلاحیت در افتا و تقنینه این وظیفه طلب است در صورتی که الان در کشور ما چه کسی اینا رو انجام میده بحث قانون و قانون‌گذاری و کارشناسی علمی در این نوبت‌ها را رو کی انجام میده چند تاشون طلبه به عنوان کسی که 20 سال در این حوزه کار می‌کنم جمعیت های فعال در این حوزه کمتر از قدر سده با تسامح عرض بکنه یعنی کاری که مثل آخوندیه مثلا پیش نمازی مسجد همونقدر که ضروری پیش نماز حتی ممکنه یه پیش نماز مثلا توی مسجدی همامم هم هم سرش نباشه آخوندم نباشه طلبه هم نباشه دارم زیادترم میشه متاسفانه فراگیرتر هم میشه بعضا ما میریم بعضی جهان میریم مثل ست چهار تا طلبه تو صف نماز استادن یا آقای مکلاه کتشالباری هم بایستاده جلو و خوب حالا من نکته هم ندارم و میخوام بگم خیلی از مشکل ماست دیگه نشون میده که ما رسا نیستیم بتونیم مشکلات سنفیمون رو حل کنیم این قال که بناس من امروز در حد وقتی یه مقدمه گفتم شد ده. حالا دیگه شما ببینید مواد چیکار کرده این قانون و اهمیت قانون و موضوع فقهی قانونه عنوان یکی از فقههای مضاف و مستحدث بچه‌ها آقایان این قانونی که امروز وجود داره اینو قانونی نیست که مثلا تو حکومت‌های مثلا اولی بشر بوده ها اسمشون یکیه این قانون حدودی داره سغوری داره شکلی داره اقتضاعات خیلی جدیدی داره هیچ تقریبا نسم غیر از این که الزام آوره اگه شما انجام ندی با زمان اجرا برخورد میکنی هیچ نسبتی با اون قانون قدیمی نداره اون قانون قدیمی از میل یه آدم نشأت میگه یه دیکتاتوری به حکومت یورسید گوا فردا این کار رو بکنید از پس فردا این کار رو نکنید این قانون جدید یه پدیده ی بسیار پیچیده است ساده است که نشأت نشید. این در مورد موضوع شناسی فقه قانون فقه قانون العلم با احکام شرعی فرعیه ان ادله ها علم با احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی در مورد قانون قانون خودش احکام شرعی داره من سوال از شما مپرسم اگر ما فردا بخوایم از این مردم مالیات بگیریم سوال یجوز لا یجوز ممکنه شما بگید ها حالا ممکنه اجمالا پاسخ بدیم یجوز تفضیلنش که چجوری میخواید مالیات بگیرید از چی میخواید مالیات بگیرید بین این مالیاتی که شما میخواید بگیرید با اون مثلا وجوهات شریع مثل خمس و زکات و فلان و حرفا چه نسبتی هست اینا همون هستن یا نیستن چطور بگیریم چقدر بگیریم کجا بگیریم کی بگیره چطور خرج بکنیم سؤال، این مالیاتی که الان میگیرن و مشروعیت کلیش هم در حکومت فقیه عادل محل تردید نیست میتونن مالیات بگیرن ولی آیا واقعا اینجور مالیات گرفتن که الان تو کشور ما میگیرن واقعا مشروعه؟ هزار تا انتقاد بشته من نمیگم مراجع معظم تقلید میگم است، استوانه های مذهب این نشون میده خیلی سالن شما با یک پدیده جدید روبرو رو هستید زبایای ناشناخته سوالات متعدد شرعی نسبت بهش تو محوضه های مختلفی شما قانون کیفری دارید قانون خصوصی دارید قانون در حوزه حقوق سیاسی دارید قوانین موضوعاتشون متعدده قانون در حوزه اقتصادی دارید در حوزه پول و بانک در حوزه حجاب و پوشش در حوزه بهداشت و درمان اینا همش انجار میطلبه باید و نباید شرعی میطلبه که همه اینها میطلبه که یک فقه جدید مرحوم آقای ایروانی تو حاشیهشون بر مکاسب یه مطلبی دارن میگن فقیه فقط موضوعات شرعی رو تعریف میکنه که اثر فقیه برش بار باشه در موضوعات چون میبینید موضوعات متعددی تعریف میکنیم قصاص هو ازهاق النفس المعصومه مقافاة عمدا بعدوانه تعریف اول کتاب قصاص صلاة زکات سو بی همه این رو تعریف میشن چرا تعریف میشن؟ تعریف میشن چون فقیر با این رو کار داره اول با این رو بشناسه موضوع شناسی حرفی بکنه بعدم در مورد ها و نوایدهاشون صحبت بکنه همه اون حرفهای مقدمه و ضرورت و فوریت و فینالی که براتون گفتم بادت مطالعه بشه نشون میده که یک فقهی باید احداث بشه به نام فقه تقنین حالا ما مثلا در مورد مسائل پزشکی هم فقهی داریم فقه, فقه پزشکی پیچیدم هست مهمه بالاخره علم مدیکال علم پزشکی جدید رو باید بالاخره فقیه ارتباطی داشته باشه این دارو تجویزش نوع تجویزش جوازش فلانش این عمل نمیدونم زیروه زیروه نیست حلول میکنه حلول نمیکنه این حکم میتدار نجس هست نجس نیست خوردنش تک خیلی پیچیده است ولی آیا اصول فقه جدیدی میخواد نه خیلی اصول فقه جدید نمیخواد همون اصول فقه سنتی مکفیه همون ادله تفزیلی که میگیم مکفیه چرا؟ چون موضوعش یه فرده و استنبات از آیات و روایات و عدله شرعیه که در فقه ما داریم برای این فقه همون رد فر به اصلی که ما میکنیم در فقه همون مکفیست اما آقای قانون هم همینطوره حازمه علم اصول شما یک روایتی را میخواید استفاده بکنید یک آیه شریفه ای را میخواید استفاده بکنید این را وارد حازمه علم و اصول میکنید اطلاق و تعادلو، و تعادل و تراجیح و استصحاب و استظهارو همه اینها یعنی وارد هاذمه میشه هضم میشه قابل استفاده میشه شما برای اینکه در مسئله بی یک فرع فقهی رو حل بکنید دو دسته ادله دارید ادله عامه که بهش عام فوقانی میگیم گاهی یا بهش عمومات میگیم گاهی با تسامح یه سری ادله خاصه دیالوحمدتون طلبه دیگه اینا خیلی بحث خاصی هم نداره نیاز به توضیح نداره یا دلایل خاص شما کفایت از اون مسئله میکنه یا نمیکنه مثلا عقد فزولی یا روایت زراره و ابن ابیعفور دلالت بر بطلان جواز مشروعیت معامله فزولی غیر نافذ بودنش میکنه یا نمیکنه دلایل خاص اگه نکنه شما میره سراغ آم فوقانی میگی آم فوقانی تجار تحنت تراز اوفو بلعقود بر اساس این باید درسته یا غلطه باطله یا غیر این که نیست این کاری که شما میکنید اینه که یک روایت شرعی که در یک زمان در یک مکان در یک شرایط خاصی صادر شده از شاره و مولا با یک حازمه حجت آور حجیت آور به نام علم اصول شما ازش استنبات می اون فرع فقهی مورد نظرتون هزم میشه. قابل قابل بهربه همون کاری که کنایتن اگر بخوام با تمثیل لشون بدن یه انسان میکنه بدن شما سیستم خونرسانی و انرژی و نیاز ما به املاح و پروتین ها و اینها اینطور طور که شما مثلا فرض کنید گوشت و بردارید تو رگ شما یا آمپول گوشت به شما بزنه یا آمپول مرغ به شما بزنن. شما حازمه ای دارید این رو باله میکنید در این حازمه فرایان طوری اتفاق میفته این قابل بهره برداری میشه برای استفاده در محل خودش علم اصول حازمه موسق و حجیت آور استفاده از آیات و روایات خیلی دارم سعی میکنم که طوری بگم قابل فهم باشه امیدوارم این اتفاق بیفته خب وارد این حال و میشه شما ازش استفاده میکنید حالا من چند تا سوال دارم آیا فقه سنتی ما نه به جهت موعد بودن و ظرفیت بل قبه داشتن بلکه بلفل داشتن آیا میتونه برای ما هازمه تقمین تلقی بشه قانون باهاش بذاریم مثلا تو قانون بنویسیم در بانک وقتی طرف اومد وام بگیره استصحاب میکنیم احتیاط میکنیم میشه طرف اومد وام بگیره یا بود بگیره یا بود نگیره احتیاط می‌کنیم دیگه چی یه سوال از نظر علم اصول و علم فقه مکلف کیه دوستانی که رسائل خوندید اول رسائل اول قط مرحوم شیخ چی میگه تعریف مکلف ها چی؟ حالا امسال قرار هسته شه آقا دیگه عجله نکنید باز یه خونده باشه مکلف شرعی مروم شیخ وقتی وارد میشه حالا اونجا هم نه تو کفایم هم همین هست مروم اخوندام میره تعریف اتفاقا اتفاق نه... خیلی اختلافی هم نیست بهش میگه مکلف فرد حقیقی بالغ عاقل غیر مقمائلایه ملتفت آدم من و شما یه سوال تکلیف اداره مالیات این عاقل بالق فرد حقیقی چیه؟ ما باید با این چی کار کنیم واقعا؟ یکی از مشکلات ما همینه که حازمه علم اصول بر اثر نظریه انحلال خلق شده نظریه انحلال خطابات شریعی رو باز شاید شنیده باشید میگه خطاب شرعی که به ما رسید ما اینو منحل میکنیم بر اساس قاعده میسور و قاعده اشتراک به عدد آدم های بالغ عاقل زنده لذا یک عقم سلات از طرف شاره یعنی عقم سلات شما، عقم سلات شما، عقم سلات شما، عقم, سلات شما، عقم, سلات شما، عقم س... انحلال خطاب شرعی رو منحل میکنیم به عدد مکلفین بالغ آقل زنده غیر مقمائله ملتفت برای تنجز تکلیف به اینا حالا سوال اینه و بعد بر اساس جنس افعال اختیاری فرد حقیقی فرد حقیقی نسبت به یک فعل اختیاری تا صورت ممکن داشته باشه این دیگه خیلی مباحثه من سعی میکنم میگم ارزم میکنم خیلی ان ان ان بگم که شما ان نشید شما یه ان واجب ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان از ان ان ان ان ان یعنی وقتی مکلف شریع شد انسان انسان نسبت به افعال اختیارش پنج صورت بیشتر داره همین پنج صورتی که عرض کردم یعنی تو یا نسبت به یه فعلی باید انزجار داشته باشی مولام گذی این کار نکنی هم داشته باشی این کار رو بکنی یا این کار کار خوبی نیست میگه این کار کار خوبیه دوستاری انجام بده یا میگه من نسبت به این لابش هر جو دلت بود انجام بودم مخوای انجام, بده. مخوای انجام بده. حالا یه سوالی از شما بگرسم آیا این احکام خمسه حقیقت شرعین یا حقیقت متشرعه؟ یعنی آیا اینا رو شارع خلق کرده؟ یا متشرعین فوقه ها خلق کردن؟ پاسخ چیه؟ چی؟ نه بلندتر بشنبه متشرعی دقیقا چرا؟ چون شما میبینیم متن یه روایت داره میگه سخت و حرامون اما تکلیف شریه من که راحته خب این نشون میده که در نسبت با اون حقیقت شرعش این یک حقیقت متشره هست حالا یه سوالی، آیا شما به شخصی مثل اداره بازردانی به بانک ملی بانک زینا میتونی بگی این فعل برا تو مکروهه؟ انسان انسانه که مکروه بگه فعل اختیاری میخواد انجام بده اصلا ماهیت این مسئله که اصلا این شخص هست یا نه خیلی ها گفتن ما با بانک کار نداریم ما با رئیس بانک کار داریم احکام متوجه اونه چون ما فقط شخص حقیقی رو میتونیم موضوع تکلیف قرار بدیم از این خیلی نظر مستحلکی ها. الان شما یا نه خب و میشه یه بانک هم میشه تصور کرد اداره رو هم میشه تصور کرد حکومت رو هم میشه تصور کرد و یه مثال کاملاً جدی برای شما بزنم ما مقبوز مقبوزترین ما مقبوزترین مکروهات چیه بچه‌ها احس چرا چرا بهش میگیم مقبوزترین در باب طلاق ما دو تا روایت داریم روایتی که میگه طلاق ممکنه روایاتی که طوری طلاق را تقبیح میکنه که کانه اون حرامه و تعارض این دو دسته از روایات تعارض بین حرمت و جواز به جای رسیده که فقهای ما میگن چی؟ میگن مقبوزترین حلال خداوند طلاق خب حالا سوال میگرسم از شما یه سناعتی کردیم تکلیف کسی که میخواد طلاق زن خودش را بده گفتیم مکروه حالا بیاید با هم یه بار بریم سراغ روایات باب طلاق همین روایات متعارضی که الان اشاره کردم که تعالیدشم گفتم شما چطور حل میکنید شما فوقه ها سراغ این روایات که میری میبینی لسان شارع وقتی در خطاب قرار میده جامعه را یا افراد را طلاق را حرام میدونه وقتی یه نفر میاد از امام مسئول در مورد طلاق دادن زن خودش حرف میزنه امام میگه خب خیلی با کراه هم حالا برو طلاق ما وقتی سراغ نظریه انحلال رفتیم خطابات قانونی منحل کردیم به اشخاص ما اونجا که شارع داره در مورد جامعه حرف میزنه میگیم شما و شما و شما و شما و شما و شما, و شما, و شما, و شما رو میگه وقتی هم اون شخته اومد از امام پرسیده میتونم زنم را تلاق بدیم میگیم شما و شما و شما و شما و شما, و شما, و شما را میگه هیچ فرقی نمیکنه انحلاله دید چیزی <تصفيق> که تو فقه مرحوم از امام از نظ... امام به نقد این نظریه پرداخت بحث نظریه خطابات قانونی را مطرح کرد گفت خطابات شاره دو دستن بعضیشون خطابات فردی منحل میشن به عدد مکلف خطابی از شاره هست عقم سلات آت از زکات معمورت بالمعروف معمورت معروف باز دو دست هست امروه معروف رو مثال نزن اینا خطاب شهره منحل میشن به عدد مکلف اما مرحوم از تمام تعبیل دارن فرماین برخی از خطابات شاره خطابات قانونی هن. کلی طبیعی مطلوب شاره و اساسا معلوم این کلی طبیعی از دست شما بعد از انحلال برمیاد از دست شما برمیاد شما یه نفر که کل طلاقا در جامعه منسوخ کنیم خب وقتی در شاره یه طرف قصه محبوب ترین نهاد در اسلام چیه؟ خانواده هممون شنیدیم؟ اینا روایات سکه رایه دید هم که نبودید دو تا منبر شنیده بودید اینا رو شنیده بودید محبوب ترین نهاد خانواده است پس محبوب ترین تشکیل نهادم نکاهه خب طبیعیه که نقطه مقابلش مقبوز ترینم طلاقه حالا من از شما سوال می‌پرسم. ما رو از امام گفت خطابات شاره دو دستن بعضیاشون منحل میشن خطابات فردی ولی برخی از خطابات خطابات قانونین یعنی به وجه قانون شاره اینا رو از ما خواسته یه کلی طبیعی حالا دیگه بخوام کلی طبیعی تعریف کنم زمان زیاد میبره یعنی کلش شاره خواسته شاره خواسته در نظام خانواده ما طلاق نباشد افت باشد ستر باشد حالا دیگه تو اوزای دیگه هم میشه زد شاره خاصه در نظام معاملی ما ربا نباشد آیا شما وقتی ربا رو منحل بکنیم به تکتون فکر میکنید که شما تکتکتون ربا نگیرید و ربا ندید مسئله ربا در جامعه اسلامی حل میشه کور خوندید اگه فکر میکنید با این مسئله مسئلهی روا حل میشه حالا عرض میکنم خب چی کار کنیم ها آقا شما راست میگید بله این روایات هستن اینجوری هم هست در همون باب طلاق چی کار کنیم خب دیگه یا باید بگیم من میتونم زنم و طلاق بدم یا باید بگیم نمیتونیم بله به لحاظ فردی روایت اجازه میده شخصی اگر واقعا تکلیف شهریش احراز کرد بتونه دانش طلاق بده خب دیگه ما هم که قانون نوشتیم بذارید از فاجعه ها براتون بگم بچه ها فاجعه نرخه از بین رفتن خانواده در کشور ما با برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی داره برابر میشه ما تقریبا یک به یکی تقریبا حالا تو استان‌های مختلف نرخ کلی رو ارزم میکنم یعنی به ازای هر واقعی نکاح یک واقعی طلاق داریم به همچین نرخی نزدیک میشیم قبل انقلاب که قوانین شرعی نبود و ما هزار تا انتقاد داشتیم نرخ طلاق اینجوری نبود پنج به یک بود پنج تا واقعی نکاح یک واقعی طلاق ثبت میشود سال 95 با قانون حمایت از خانواده را بردیم تو مجلس شورای نگهبان قانون اساسی گفت این شرعیه شد قانون بیشترین نرخ طلاق در اون سال ثبت شد قانونم شرعی چه اتفاق داره میفته شورای نگهبانم که هست ما داریم با فقه فردی میخواییم جامعه رو اداره کنیم حالا بله. شاره اجازه داده طلاق زنش طلاق بده ولی اجازه داده به جامعه که طلاق رو ترویج کنه چون انا یه روزنامه باز کنید این آگهی های رو طلاق توافقی در پنج روز و طلاق اینقدر تسهیل باشه اصلا طلاق اینجوری باشه حالا ممکنه بگید آقا اینا نتیجه و اوزا اقتصادیه فلان بله اونا رو من میپذیرم اونا هم یه قسم احکام شرعیه اقتصادی خانواده است، اونا هم خودش هست ببینید اینجوری فاجعه خلق بشه شالا طالعه از خود تو پرسیدید چرا اینقدر نظام اقتصادی ما ضعیفه. تزام معاملات ما ضعیفه طرف یه شبه میلیاردر میشه یه شب بدبخت به خاک سیاه میشه یه چک میکشه مال مردمو میخوره و میره یعنی تو دنیا جایی یه چک نیست چه اتفاقی میافته وقتی شما با فقهی که قرارداد احکام فردی را مکلفش مکلف فردیه خب اینا وقتی داخل اصول میدید به حازم علم اصول میدی براش در تصمیم بگیره نهایتاً میتونه برای شما چی تصمیم بگیره احکام این شخص رو در بیاره نمیتونه احکام کنترل نظم اجتماعی رو که هدف قانون بود تأمین بکنه لذا مکلف در قانون گذاری در فقه قانون با مکلف در فقه فردی فرقون اصولش هم فرق میکنه نحوه استنباطش هم فرق میکنه. شما تو فقه صلات البته در عبادات نیاز هست ولی شات زیاد نباشه شما نیاز به فقه نظام دارید یه سوال اصلا فقه نظام این نظام که میگن تعریفش چیه حتما چند تا تعریف متعدد دیگه یکی یه تعریف بگه برامو شهید سر تعبیری دارن میگن خطوط کلی شریعت در یک نظام اجتماعی خطوط کلی شریعت در یک نظام اجتماعی شما در نظام عبادات احکام سلات را استنباط میکنید نیازم خیلی شاید به فقه نظام نشود اما تو قانون بدون فقه نظام میتونید جلو برید نیاز دارید به خطوط کلیه شریعت یعنی چه خطوط کلیه شریعت در خانواده یکی از خطوط کلیه شریعت حفظ فروجه حفظ نسل، حفظ افته در مقابل فقه نظام بچه چی قرار داره؟ فقه چی؟ مرحوم شهیستت باز این تعبیر داره فقه احکام در مقابل فقه نظام خطوط کلی شریعت در مقابل احکام جزی فرعی شما با احکام جزئی فردی میتونید مشکلات فردا حل کنید اما قرار باشه مشکلات نظام اجتماعی رو حل بکنید اول باید فقه نظام داشته باشید بعد باید فقه احکام داشته باشید برای استنبات نظام باید اصول فقه داشته باشید حالا تازه فقه احکام قانون بازم دوباره اقتضاعات خاص خودش داره این نسبت بین این فقه تقنین بین فق و تقنین که فقه باید حازمه استنبات احکام شرعی حوزه تقنین رو هم حازمشو قدلله تفضیلیشو علم اصولشو تحییر کنه هم نظام مسائلشو یعنی فقهشو درست کن من سعی کردم تو این دقائق محدود هم یه موضوع شناسیه بدم هم یه ضرورت هایی از این که فقه چیه و چه باید باشد خب ممکن شهار برزده جاها الان چی کار میکنن الان یه کارایی میکنن نتیجه چیه نتیجه همین کاراییش که تو جامعه میبین بگیر نگیر داره یه جاهای گرفته جایی جاهایی نگرفت یه جاهایی توفیقاتی داشته جایی زمین خوردی واقعی باشیم دیگه از یه آدم که فقط وسط لحاف میخوابیم بدبینی ترویجی می کنی. بعضی از این آخوندهای انفلو انسر و سلبریتی وسط الله ها هر جا خوبه این این برند هر جا هم بعد این را می نه واقعیت اینه که انقلاب چهل سال وجود نظام جمهوری اسلامی سی و چند سال رهبری شخص آیت الله الازمه سید علی خامنه ای آم بنابه گزارش های اقتصادی در جهان وقتی آقای خامنه‌ای شد رئیس جمهور و بعد هم رهبر این کشور ما رتبه صدوم تا صد و اقتصاد را به اقتصادهای جهان داشتیم 36 سال انقلاب اسلامی بر اساس گزارش ها بدترین گزارش ها میگه ما رتبه پنجا اقتصاد جهان هستیم گزارش های معتبر جهانی 24 چارده وجود داره ما بدبینه نشده انجازه بیش از پنجا و شش رتبه اقتصاد ایران در 36 و سال رشد پیدا کرده سرعت رشد ما یعنی اینکه ما توی این 36 سال به سرعت از مقام 112 برخی از کشورهای موفق برای اینکه این رتبه رو به این رتبه برسونن بیش از 20 سال برنامه ریزی کردن بله اقتصادم پنجاه هم بودن جهان چیزی نیست ضعیف هم هست حق این مردم بیشتر از اینه مردم که اینجوری جان و مالشون رو در طبق اسلام گذاشتن تقدیم کردن به اسلام در طبق اخلاص حقشون بهتر و بیشتر از اینه ولی صد ده بودیم شدیم پنجام با همه ی کمکاری هم این کل حکومت اسلامیه امید یعنی همین و باز امید یعنی همین که ما امیدواریم به این که در نقشه توفیقات برسیم به جز به دهتای اول دورم نیست ولی می طلبه که شما از اون پوسته خشک دور بشید خوام چند دقیقا وقت دادم شما سوال بپرسید دوستان توصیم اینه امروز یک طلبه در حد آلی با فقه و اصول بدونه. ولی این کافی نیست. شما باید تخصص هم داشته باشی. باید مسلح به مورد نیاز طلبه باشی. مناسبی در حکومت اسلامی هست ما نمیتونیم داد بزنیم ولی حتما به نظر ما حالا اگر نگیم واجبه که اگر بگیم واجبه ممکنه ما رو هو کنن حال دقالش که بهتره یک آدم اسلام شناس این کرسی رو بگید بهتره یک اسلام شناس واقعی این کرسی رو بگیره. دوستان حتما رشته های جدیدی که مرتبط به حوزه قانون هستند رشته فقه سیاسی چه در حوزه چه در دانشگاه حتما به این رشته ها فکر کنید رشته حقوق و عمومی گرایش های علم اقتصاد گرایش های حوزه جامعه شناسی این هایی که در حوزه تنظین اجتماعی و ارتقا اجتماعی بسیار احساس هست و گفتگوهاشون هم بعضا غیر شعری هست حالا غیر شعری که میگم شاید منطبقه با شعر نباشه این به عهده شماست که این بار رو بردارید من دانشگاه که میرفتیم یه خوشزوق لطیفی توی ببور شهده های گمنام دانشگاه ما یه تابلوی درست کرده بود عکس شهده ها گذاشته بود روی این تابلو شهید همد، شهید چمران، شهید احمدی روشن شهید رضایی شهید تهرانی مقدم توی یکی از این تابلو ها آینه زده بود خیلی کار لطیفی بود هر بار که نگاه می تو این آینه عکس خودت رو کنار همه این شهده هم می دید. کنار این سلف صالح عالی از طایفه فقیهان شیعه و علمای شیعه تصویر شما خالیه و تصویر شما تکلیف شماست اگر واقعا آمدید طلب شدید به درد خودتون و جامعهتون و شریعت خاتم محمدی بخورید مطمئن باشید غیر از, از این مسیر ممکن نیست امیدوارم شما در اون آینه در آینده ببینم خب من تقریبا ده دقیقه فرصت دارم. تو این ده دقیقه دوست دارم اگر سوالاتی دارید انشالله جواب شما نگاه بکنید به حوزه فناوری‌های نانو قوانینش هم ببینید بخشش قانونی نیست که از طریق حکم حکومتی رهبری ایجاد شده همین پیشرفتی که ما الان در حوزه دی ان ای داریم شبیه سازی سلول سلول‌های بنیادین داریم خب با حکم حکومتی با قایه بخشی از قوانین ما حکم حکومتیست دیگه با حکم حکومتی مقام معذب ره بری مرحوم آقای دکتر نصر اسفانی مجموعی رویان رو بنیان گذاری کرد ما الان سه کشور چار کشور اول دنیا در شبیه سازی هستیم این نشون میده قانون ما در این حوزه موفق بوده هم بهنگام بوده هم درست بوده هم نخبه پرور بوده هم نتیجه گرا بوده این توفیقه بوده یعنی چه نظام هر قانونی نظام دیگه ها خب به قانون اینا دیگه خیلی سوال البته که همه این که شما میگیده هست یعنی همین حکم حکومتی مقام معظم رهبری و تشکیل پژوهشکده رویان و قوانین مؤسسه رویان و اینها از همون قانون اولی آمده و همه اینها الان قانون داره الان پجوشکده رویان قانون خاص داره تو شورال انقلاب فرهنگی و برای همین الانم موفقه الان ما در کشور خودمون چند وقت پیش، من رفتم مجموعه مرحوم آی دکتر نسر اسفحانی که واقعا اگر من بگمم شهید کم است. واقعا ما بده که اینا رو نمیشنستیم چه همزوریش مقبازه و فرمودن من رو آی دکتر نسر اسفحانی همسایه ما بودن در اسمعان. ما رابطه خانوادگی داشتیم و من مدتی در مؤسسه رویان در اسفحان که اون دفتر اولیش بود من نماز بخوندم تو مجموعه چه وقتا پیش به مناسبتی جهاد من رو دعوت کردن نتایج این رو ببینم الان یک نوعی از با همین استفاده از همین شبیه سازی شما میدونم مثلا یک حیوان شیرده تقریبا نهایتا 20 تا مثلا 50 کیلو شیر در مثلا فرض روز میده و غالبا هم وقتی شیری شد یه گوشتش ارزش نداره حالباً اینجوری من بازدید رفته بودم یک حیوان شیردهی رو با همین اصلاح جنتیکی در واقعیت. روزی دیویس کیلو شیر میداد و گوشتی هم بود هر یه دونش فکر میکنم یک تون یک تون نیم بود اصلاً باربندی که میرفت سه تا چهار تا مثلا حیوان معمولی بود می گفت ما الان این فناوری رو بیش از 15 کشور اروپایی می‌خوان این فناوری ژنتیکی رو از ما بخره. میگه آقا شما فقط اون سلول دی ان ای به ما بفروش حالا ما چند تا مشکل نخت بفروشیم تا بشه یه سلول دی ان ای دانشمندیان یعنی رشد یعنی حالا اینو می‌گذاری صنعت خودروی ما. یا سنت صنعت ما مشکل نداره قوانین حوزه خودروی ما مشکل داره چه وضعیتی هستی؟ چهل سال تقریبا هیچ شما دیدید چند روز پیش آقای رئیس شمول رفته بودن بازیده از حساب سنایه هلیکوپتر سازی ایران اونم دوباره یه نکرد نمونه های موفق قانون گذاریه جنگی که ما یه موشک نداشتیم موشک چیه ها؟ یه تیر نداشتیم حبابی امام گفت یکی از کارای بچه های ما وقتی یه خطی رو می گرفته این بود خشابارو می برای یه فشن برای یه فشن کل این خط رو می گشتن چند تا فشن کل خط رو می صد تا دونه فشنگ پیدا می شود نه تو انبارا رو اصلاهی کسی که مثلا کشته شده بود ال. الان سیستم انتقال قدرت و هلیکوپتر سازی تو صنایع دفاعی از هواپیماسازی پیش تره حالا اینکه بخوام توضیح بدم که چرا از هواپیماسازی و هلیکوپتر سازی تره چون میدونید هلیکوپتر درجا بلند میشه هواپیما لندینگ داره این دوتا سیستم متفاوت انتقال قدرت داره اون فوق سبک و فوق سرعته اون سنگین با سرعته ما الان در صنایع هلیکوپ نه تنها کل هلکوپترهای کشور رو میسازیم و تولید میکنیم سنایه هلکوپتر سازی ما هلکوپترهایی رو تولید میکنن که الان مثلا با آپاچی های امریکایی که معروف ترین جهان جهانستان برابری میکنن چرا ما نواز بتونیم هواپیما بسازیم و ما مسخره میشیم؟ چون کسی اینو نمیدونه ولی ما یه قانونگذاری موفق در این حوزه داشتیم ولی در سنت خودرو نداریم هنوز گریبکس اتوماتیک تولید نمیکنیم در صورت پیشرفته ترین گیرباکس اتوماتیک همون گیرباکسیه که توی هلیکوپتر سازی شما استفاده میکنه نشون میده گذاری شما در این حوزه ضعیفه این یه نمونه قوی و ضعیفش. حالا نمونه های متعدد داره ما نمیتونیم بگیم ما رشتمون بعضی حوزه خیلی خوب بوده بعضی حوزه ضعیف‌تر سوالی دوستان داره نماینده مجلسش. اولا که حالا من الان تقریبا بیش از دهه هست که با مجلس کار میکنم در مرکز پشوش های مجلس کار میکنم اولا به لحاظ علمی به لحاظ امر علمی با امر سیاسی متفاوته من شما رو ارشاد کردم در حوزه علمی این کار اولاً ورود بکن. بله کار علمی به جایی میرسه که سلاحیت سیاسی نمیتونه در مقابل علم بیسته یه جایی اینجوری نیسته ولی یه جایی هم اینجوریه که اگر شما تولید علم و تقریت علمی در عدی باشید دیگه کسی نمیتونه جلوش بایسته یعنی یک نماینده تا به این رو ندارد که شما بشت بگیداری خلاف شر مرتکب میشی تو حوز قانونگذاری تو فلان حوزه و سرمایه اجتماعی دینم بیاد پشتش چرا خلاف شر مرتکب میشه؟ نماینده مجلس عدم شفافیت در مجلس خلاف شره تمام میشه بعد یه یعنی رو بگم خیلی از این اشتباهات مجلس حوز قانونگذاری ما عمدی نیست محتوا درش نیست. نیاز برای طلبه قوی بیاد روی حوزه کار کنه، حوزه اسلامیش کار کنه، حوزه شعریش کار کنه. همه ابعادش رو ببینه، کمک بکنه به رشد علمی کشور، بعدا رشد سیاسی اجتماعی به دنبال رشد علمی آرام آرام دائر خواهد شد. بله بله میز رو هم بیارید. دوستان میگن که نشسته بعدی تشکیل خواهد شد خلاصه من جنببندی بکنم زمان هم گذشت یک کلمه آن چه گفته شد الا را به اینکه سعی کردم قوامزش را حذف بکنم و اواید مفیدش را برای شما بگم ضرورتی در تراهی یک الگوی مطلوب در نسبت بین قانون و فقه بود و ضرورت هایی که باید داشته باشه و امیدواریم که شاهد رشد و ترقی فردا فرد دوستان بوده باشیم در مسیرشون و برای شما آرزوی سربلندی و توفیق داریم چند دقیقه دیگه خب جلسه بعدیست تا شما استراحتی بکنید و اساطید معظم هم تشریفیارن کرسی هم انشاءالله برگزار بشه و ما خدمت شما باشیم بر چهره دلروبای مهدی صلوات این نصفت مثلا فکر مثلا اقتصاد اینا با این فکر کانون که طول میشه من از مثلا یه کانون اقتصادی هست این ببینید دانش های دیگه خادم قانونه یعنی اقتصاد میگوید فقه اقتصادی میگوید چطور یک قانون, قانون مالیت خوب چیه بعد فقه تقدمی رو تبدیل میکنه به یه قانون فقه اجتماعی به شما میگه روابط اجتماعی تو وزه پوشش و افاف چگونه باشن یه جوزای اجوزش فقه تقریر این یافته ها تبدیل به قانون یه فرآیند تخصصی که از آورده دانش های دیگه شما اینجا استفاده می‌کنه مثلا شما در مرحله فقه و تئوری که جدیدی توش ایجاد ببینید شما خوب باشه با تلاش معمولین که بگیرم تا پایه هشته که خوندم توزه بعد میام برم مثلا دانشگاه و آخر رنفق سیاسی خونمم بعد دکتری بگیرم نه اساساً بلان بچه های مدرسه ما بندگان خدا صبح میان ساعت هفت تا ظهر میرن در سطح شرط ماده دل ایجدهانی من مابرشون داریم محضرشون بیاری ایجدهانی من اخراجشون داریم قصد بیان کلاس خب خود در تو دانشگاه تو و چای ما صبح میاد درس خصوصی عصر اینجا کار آه. سختیه تزی که مثلا بقیه دارن میگن که هنگ سو من این رو نمیپذیرم که کسی حتما بره واسه خصوصی بخونه 5 سال خارج برود من بعد خودم برود. بعد تازه بیاد سفر شروع کنه اتفاقا بنظرم برای اینکه هم خصوصی ببین چرا چون ذهن شما دوام مسالش رو وقتی دیگه پیدا کرد شما نمی‌دونید یکی از مشکلات ما های قومی اینا رو به شدت سفارش می‌کنه وصول محض می‌کنه باید اولا علاقه تلاش توانی همه چیزشون رو نسبت به تخهای جدید از دست یکی کسی که خوب روی متقای داشته باشه اگه خوب کاملاً بگی که مشکل نداره شما همزمان هر دو رو بخون چشگاهی هم ندید من خودم هنوز درس خارج میرم میشینم با که دارم از که به از شما مگه اونی که پنج سال رفته درس خارج درعتا به اصول قوی داره وقتی به قول یه تمام داره دیگه چند سالش اوماده این که 5 سال درس کو اگه خیلی زود آمده باشه بین 25 تا 30 سال بعضی که بین 25 سال 30 سال داره زنگ گرفته زندگی تشکیل به کار داره، نداره، چه جوریه؟ بعد آیا میره تازه بشینه مثلا لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره؟ نه. البته اگر قرار باشه که اومده حالا لیسانس سطح دو سطح, سطح سه. خب سطح 4 خب سطح که شما لیسانس سطح دوی تخصصی شدن نداری، یعنی که سطح 4 شما اندازه سطح دو میآره. خود الان با بچه هایی که میان دانشگاه فقه بخونن دکتری مثلا یا سطح چهار میان به اون خصوصی بخونن سطح چهار میان به اون بخونن سطح سی فقه دارن عملا اینا سطح چهارشون اندازه سطح سه نه سطح چهار دارن ولی عملا چیزی چرا چرا؟ مثلا پایه های کارا نمید. اتفاقاً این دانش ها اصلشون اون سطح دوشونه کارشناسیشونه کارشناسی شونه. پایه‌های اصلیش یه شبیه مثل موسسه امام موسسه امام هم کلا خب آسیب های بالا پایه‌های خاص خودشونه. ممکنه. ممکنه بگیم طراحی الگوش کافی نیست، ممکنه بگیم ناقصه به نظر من طراحی کافی نیست. معارفش خیلی زیاده، تخصصش خیلی کمه. عملا از املا خروجیش از لحاظ اثرگذاری اجتماعی و اینا خیلی مارجش که با مؤسسه معاصر عراقی و مؤسسه اقوینی ها مثلا مؤسسه آی عراقی مشکلیه با مؤسسه اقوینی که مدرک سید داره اوه مدرک اون رو نمیپذیرن و بعد به نظرم بعد نیست که طلبه های فضای آکادمیک آره دانشگاه رو هم بعد از یه بلوغی 5 نفس. خلاص مثلا هر چیزی رو دروید هر چیزی رو. پای شخصیت شکل دیگه. یعنی باشه باشه. بله بله بله, بله اصلا من که خودمون زخم چشیده هایی کسایی هستم که مثلا من یه وقتی در تهران دانشگاه تهران درس خوندم برای اینکه درس خارجهم تعطیل نشه از شرق تهران حدود دو ساعت می‌رفتم غرب برای اینکه درس آوا رو خودم خودمم درس تو حوزه بدم دانشگاه دکتری بخونم مجبور بودم روزی 5 ساعت تو مترو تاکسی بشینم یک ساعت قبل از اذان آن صبح تو مدرسه بقیه ط کفایه می اذان از آن صبح می اومدم تو مسجدم نماز میدم می بعد میرفتم خدمت شما کنم یه مدرسه یه ممالی، یه مکاسب می بفتن. اینا این حالا مثلا یه بین اینا چه 50 کیلومتر فاصل هست تو ترافیک شهری تو اون ساعتصبح ساعت. بعد میرفتم خدمت شما از کنم دانشگاه بعد میرفتم بهوقه بعد شب دوره منم مسجد ساعت ده ده برگشتم. یعنی یک ساعت از آنسون می رفتم ده ولی خب انسان قطعا برام خدا رحمت کنه برام های حسن زاده آمینه بخامتن خداون تاقل لئی سل انسان الله مالا سعا انسان نیست ولی لا امن لا و عجر لحسنی خدای این, این کسی کار خوب بکنه کسی که صبح درس خونه درس خدا عجر شوش هم دنیا شکل شما نتوانسته باشیم. نه. میشه آن ریخت. 206 خیلی بهتر میتونم جواب بدم. متوجه شما نیم. 913 477. یه بار میگم. 913. بگید از شماری همین با مثلا یه شماری آجورا این مسئله که فرض کنید واسه اخقتصاد و ماده چوری از قبل توی دانشگاه گفته میشه بعد باید فرخ تبدیل به قانون بشه این مسئله ببینید شما مثلا بگید ذریبه چینی مثلا در کشور ما مثلا نرخ مثلا فرض کنید بیکاری 13 درصد تو یه یافته علم اقتصاد بعد علم اقتصاد میگه چه جوری شما این نرخه بینکاری رو ببر پایین چطور شغل تولید کن؟ به شما میگیم خود علم اقتصاد اینطوره تبدیل به قانون کنه قانونگزاری خودش یه طبیعتی دارد، یه شدت خود است این رو باید حقوق و تو موضوع فقه سیاسی، این تبدیل قانون میشه مثالش اگه بخوام زیاده یه مقداری پیچیده هست ولی